بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يَهَدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّهُ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن نَّصِيَّدَنَا وَحَبِيبَنَا عنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیه و آله. خوش آنان که با عزت زکیتی به صوت خیش برچیدند رفت ذکالاهای این آشفت بازار محبت را پسندیدند آنان, آنان که در این باغ چون گل سباهی چند خندیدند و رفتند خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند نگردیدن هرگز گرد باتل حقیقت را پرستیدن درفتن خوش آنان که بر این صحنه خاک که خرشی بی رفتند درفتن خوش آنان که از پیمانه دوست شراب عشق نوشیدن درفتن خوش آنان که در راه عدالت به خون خیش قلطیدن درفتن خوش آنان خوش آنان که بزو آدمیت در این ویران پاشیدند و رفتند خوش آنان که پادروادی هست نهادند و نرقزیدند و رفتند زه تقوا ز برتن جا برتن کن که پاکان ز تقوا جام میپوشیدند و رفتند خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفت خدای منان با گذاریم توفیق داد بار دیگر در محضر شما بزرگواران حضور پیدا کنیم تصفیه درج میکنم، کنم وفات مفتی اعظم حوض علمی احنافخاق شیخ الهدیف مدرد مفسر ها بگویم از الغاب برای این مرد بزرگ کم لاغدار حقیقی مولانا متحری و اساتید و طلاب حوضه علمی هستن و که چه شخصیتی را از دست داده نامی کنم خدای مطال این استاد مارا درجات دارد خدا درجاتش را بلندتر کند خدای مطال او را با انبیاء و صلاحا و اولیاء خود هشت کرد مولانا شهیدی مدیریت بخش دارافتای حوزه را به داشت چند سالی دوره تخصص افتای را راه کرده و در کنار سایر اساتید بزرگ حوضه مشغول تربیت کردن فارغ تحصیلان تخصص فقیهیست که اصطلاحاً به مفتی گفته می شود سالهای سال هست در حیات و بعد از حیات حضرت مولانا رحمت الله علی مدرس درس بخاری و شیخ الحدیث این مدرسه به حساب می آید مولانا شیده علاوه از طبانایی علمی در تمامی عرضهای علمی یار صدیق و دوشادوش حضرت مولانا خادی حبیب الرحمن متحری بود و در تمامی مسائل اجتماعی در کنار ایشان همچون برادری خدمت میکرد در داخل حوزه ناظم تعلیمات مدرسه بود شروعی در تاک میشد با یکی دو تا از اساتید مشخص می‌کردند که ما چه درسی را امسال تدریس کنیم پدرانه به ما میگفتند که فلان درس از آن شماست علاوه از این که در صحنه های علم همچون خرشیدی می درخشید در کنار برادران تبلیغ نیز حضور داشت و عراقین تبلیغ را غالبا توصیه های راه، بخش و هدایتگرانی می نمود از دائم مجمع فقیه زاهدان بود ستاری که در کنار سایر ستارگان فقر در زاهدان می و حتی نقش کلیدی داشت نظر مولانا شهیدی که مطرح شد شیخ الاسلام مهر تعیید رو بر آن نظره فقی می زد به اساطید داشت این که چیزی نگذاش از وفات حضرت مولانا سلیم, سلیم الله خان بزرگترین عالم پاکستان و استاد ارشد مولانا، مولانا مولانا وفات کرد به اینکه در کنار حضرت مولانا خوادیش هم سدین و متحرید دهتی شد این ها گوشه ای که مولانا در حیات خود به اساتید خود داشت هر سر در هر از اساتید می شود. یا از مرحوم مولانا از مرحوم مولانا غلامحمد موحدی از مرحوم خطیب رحمت الله علیه صدای مولانا میگیره گره ما را طوری تربیت کرد که یاد اساتید خود را به خوبی داشته باشد داد توفیق دهست که ما هم یاد او را همیشه زنده داشته باشیم و همچون او در عرصه های علمی به بدرخچیم همه شاگردان و اساتید و حوضه علمی انشاءالله یکی از اساتید همین چند دیگه پیش می فرمودن. از تقوی مولانا سلوات برش فرمان که چندین سال پیش از اساتید بزرگ حوزه عصن الان گفتن اسمم را نبرید معلومه که یک چندین سال پیش که ما طلبه بودیم از مولانا شیدی داشتن کافی تدریس میکردن، یک دفعه یک کلمه یادشان اون آمد یک مقداری تعامل کردن بعد عشقها و دیده مولانا آمد و فرمودم خدایا چه گناهی کردم که این نکته از یادم نرفته مولانا چقدر دقیق است در علم و در تقوا مبادا این چیزی که این لحظه از خاطرم رفت نتیجه گناهی باشد که کرده باشد همه شما شاهدی دیاد مولانا این رو میخوان شکاوتو الی وکی عن سو احفظی فوصانی الى ترک المعصیه فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَهِي وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي ایک در شورای اختلاف نشسته بودیم اشبخاری بود چند سال بود که در کنار ایشان جنامه النموهدی و جناب لیباسی بودیم روزهای پنجشنبه یک دفعه مولانا گفتند دیشب تا دیر مطالعه میکردم. یک دفعه است آذر نگاه کردم دیدم خیلی دیر وقت شده. دیگه خوابیده. حالا با خودم فکر میکنم چی شد که من دیشب توفیق بیدار نکردم، هیچ وظویی بگم. تا اون موقع بیدار بودم و درکت نمازی بخوانم. فائن حالا کبیره تن، الا علی الخاشع وقتی ایشان این رو میگوید همین طلابی که چند وقت پیش با ایشان سفر پاکستان داشتن میگوید نیمه می های شب مولانا بلند میشد وضو میگرد دو یا سه ساعت نیمه شب گریه میکرد نماز میخوان ماها جوان ها خسته میشدیم براز میکشدیم اما مولانا یا قرآن میخوان یا گریه میکرد یا نماز میخوان دا اون همه مقام میگوید به اینها لکبیرت الا غلال خاشعین نما سخت است مگر بر اهل خشوع و خضوع مناسبت یاد شخصیت های بزرگ ما صرفاً برای داری و ازاداری نیست ما على سنت اهل ازاداری و داری نیستیم ما با کمال ایمان تازمانی که عزیزی در کنار خود داریم قدردان زحمات او هستیم وقتی که خدا این نعمتی که به ما داده بود را گرفت برای اشدای خیر می کنیم او را به طریق نبی کریم صلی الله علیه و وسلم قوصل می دهیم دعا می کنیم برای اشدای خیر می کنیم اما سعی می کنیم که راهش را به درستی ادامه دهیم سعی می کنیم مطیع فرمان او باشیم که ما را به چه چیزهای امر می کرد لذا این شاگرد آن مرد بزرگ هم قصد دارد به چند نقطه ایمانی و اخلاص در این چند دقیقی که در خدمت شما سفر دارد عن عبدالله ابن عمرو قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاح اولی هذی الامه بالزهد والیقین ويهلكوا آخرها بالبخل والعمل. أزهري عبد الله بن رضي الله تعالى عنه روایات مكنت. رسول مكرم صلى الله عليه وسلم فرمودن سلَّاهُ خيرَ إن أمة باذَهَدَ يقين أغلشَ وآخرِ إن أمة رَأَى بخالات و آرزوهای بلند و دست نیافتنی حلاک خواهد کرد این شبهایی که توحبت العلوم ها برگذار می شبی بازار رفتم میخواستم میوهی تهیه کنم دیدم مولوی رشید احمد دارن میوه میخرن همون میوه های گران قیمتتر و بهتر رو تهیه دارن میکنند یک دیدم میگه مولوی از سار امشب مولانا میهمان دارد گفت دست برای بهترین میبرا برای علمایی که هستن خلیداری کن برای شلمت گفت این رو مولانا شلمت گفت به سر جناب مولانا گفت کمتر جایی دیدم این بزل و بخششی که در شیخال حدیث هست در جای دیگر دیده باشم مولانا آنقدر سرمایی فلانی نداشت اما اکثر علمایی که از مناطق دیگر میامدن افتخار میکردن که در خدمت حضرت مولنا باشن، نزد مولنا هم سعی میکردن میزبان خوبی برایشان باشند و غالباً علما در خانه حضرت مولنا بودند. هرچند که اساتید دیگر هم حضور داشتند، اما این یکی از های خاص حضرت مولنا شیدی بود. رسول مکرم صلی الله علیه و میفرمایند وقتی عمل شخص کوتاه شود، وقتی بنده در عمل خود کوتاهی کند خداوند او را به غم و درد مفتلا می کند مؤمنین خدا نکند این مصیبت هایی که بر سر ما آمده بر اثر کوتاهی عمل ما باشد هرچند که ما معتقدیم خدای متعال بندگان خواست خود را مبتلا می کند طریق عشق جانان جز بلا نیست زمان بی بلا بودن روانیست بلا و کشتا لقای حق ببینید که مرد بی بلا و مرد لقانیت، اما به خداییم اگر امروز یکی از پرشیدهای بزرگ علم و معرفت را از دست داده ایم خود پای پایابندتر به ایمان و تقبا و داشته باشیم و از خدای خود بخواهیم که این های بزرگی که برای ما باقی ماندن خداوند اینها رو برای ما حفظ کند توفیق داد در خدمت اینها خدمت کنیم در مقابل این مصیبتی که به ما رسیده صبر کنیم شخصی ارز کرد یا رسول الله ایل ایمان افضل کدام ایمان از همه پرفضیلت ترست پیغمبر فرمودن از سبر و سماح یکی صبر و یکی بخشش همواره بدانیم که ما کی خدای متعال برای ما از مادر هم تر است عبدالله مزنی می‌گوید ان ان الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن كما يحمي احدكم مريضه همانطور که هر کدام شما از مریض خود پرستاری می‌کنید از او حمایت می‌کنید خدای متعال از بنده مؤمن خود پرستاری میکند از او حمایت میکند از او مواظبت میکند یعنی دنیای او را حفظ میکند و اگر گاه گاهی بنده خود را به مصیبتی دچار میکند عبدالله مزني میگوید الم تروا ال المرأة کیف توجر صبیها المرارة وتفعل وتفعل تريد بی صلاح عاقبته وكذلك يفعل الله عز وجل به عبد المؤمن خدای مطال همچون همان مادریست که اگر میبیند فرزندش مریض است داروی تلف را بارها بارها در دهان فرزند میچکاند و او رو وادار میکند که این داروی تلف رو بخورد اگر هم مصیبتی به سراغ ما میآید خدا با خیر ما رو میخواهد خدا میخواهد که ما رو بیدار کند عزیزان خود رو به لغای خود میرساند. مرگ تحفیص که به عزیزان خدا داده میشود. رضا و الهی رو در بر میگیرند. به مراد نهایی خود میرسن اما من و توی برادر مسلمان هم از مرگ عزیزان خود درس بگیریم. هر بیشتر خود را آماده بکنیم. در مسیر دین و دیانت تراش بکنیم. از رو می خانم که غالبا از زبان حضرت استاد شنیدیم الا و ان في الجسد مضغه اذا صلح اصلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا هي القلب بارها از منشیدین رو می‌خوندن بدانید در جسد شما قارچ گوشتی که اگر این قارچ رو درست کردید تمام زندگی شما درست خواهد شد و اگر این پارگوش خاصت شد و نابود شد تمام جسد و زندگی شما نابود شده است علاوهی القلب این است که در دینه هر کدام از شماست علما می‌فرماید، فرماید معنای جسد در اینجا همان دین است زیرا دین با صلاح با خوب شدن و به صلاح آوردن اعضا و جواره دین سابس و سوار می و با فساد اعضا و جواره همچون قلب نابود می شود علما و حکما می نویسن قلب همچون خانیست که چندین در دارد دست و پاو و چشم و گوش و زبان شخص که شیطان از این مسیر قصد حمله به قلب انسان رو دارد مؤمن با مسدود کردن راه شیطان و پایبندی به عمال و شریعت راه ورود شیطان رو میبندد فا این قلب رو طوری نگه میدارد که معمن نور الهی باشد نه اینکه که بالله الله شیطان در آن جولان کند و هر چه بخواهد بر آن انجام دهد زبان شخص مؤمن اهل صدقه از خشم اضافی و نادرست خود رو حفظ می کند در آشکار و نهان از خدای خود میترسد و همواره به سمت خیر متوجه است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام فرمودند هر ما بین دو فک خود و ما بین دفاع خود را حفظ کند من برای او بهشت را زمانت می کند پیغمبر فرمودند این زبان است که انسان را به نابودی میکشاند و باعث اسمی شود که شخص نابود شود مؤمن همواره در مسیر زندگی خود خدای متعال رو مد نظر دارد به سوی فروردگار خود رو جوع توبه می کند رسول اکرام صلى الله عليه وسلم مي فرمايان يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وتقربوا إلى الله بالعمل الصالح من قبل أن تشغلوا قبل دينك وفاق کنید ففر بردگار خود بازگردید توبه کنید وقبل مشغول شوید با اعمال صالح به پروردگار خود خود رو نزدیک کنی وقت من رو پایان است احادیث رو که خواندم سعی کردم مسالی بی باشد یادی باشد از استاد فرزانه حضرت حاج مولانا شهیدی رحمت الله علیه مفسر محدث فقیه مشتهد استهاد هر کم است میبینید که مولانا هم تحریف با عشق و با سوز دل از او یاد میکنند میفهمید که چیار ارزشمندی رو مولانا از دست داد اما از طرف تمامی طلاب و اساطید حوضه به مولانا عرض میکنم تا پای جان خود نخواهیم گذاشت که کن بود مولانا شیدی را حسن کنید این را همه ی اساسید به من گفتنید که اینجا بگویم <تصفيق> همه ی اساسید طلاب حوزه آن چرا در تمان دارن در خدمت شما ای استاد آلیغر خواهند گذاشت و مطمئن باشید چما مردم که اگر خورشید شهاب شهابدین امروز دیرنه می شود نور او در جبین شاگردانش جلوه گر خواهد بود و حوزه علمیه اگر خورشید خود رو در پیک خود تقوا و اخلاص از دست داده است ماه های دیگری دارد که هر کدام از اینها نور آن خورشید رو ان الله نشان خواهند داد حوضه علمیه منظومه شمسی نبوده که یک خورشید داشته باشد حضرت ملنا شهیده رحمت الله علیه در کنار خود همسنگران و دوستان بزرگواری دارد که هنوز الحمدلله حیات دارند و شاگردانی را تربیت کرده و همچنین در حیات خود بارها و بارها اونها را آزموده است بعضی وقتها میفرمودند حضرت و ساد شما فلانجا صحبت کنید میفرمودند فلان مولوی رو ببرید دعایی وقتا نیماهای شب برای رای ما زنگی زدن یک شبی زنگ زدن مولی است بله آزد وستاد نظر پید در مورد این مسئله چیه؟ او شما به من حالا میفهمد اثر که مولانا در آن زمان او را میازماید معاذب است که ببیند که گونه یک مسئله شرعی را فاسخ میدهد میداند برای همیشه مندگار نیست اما شاگردان خود رو تربیت کرده و حضرت مولانا متحریه حضرت مولانا و واحدی، سایر اساسی و بزرگوزه همه و همه هستن شا... تا الله جوابگوی نیازهای جامعه اسلامی باشن حضرت مولانا فرمودن از صلاحش شما مردم بزرگ دردانی کنم شما مردم سنگ تمام گذاشتید شما مردم لات کردید بزرگواری کردید و مراسم تحضیه نماز جنازی برای مفتی خود برگزار کردید که جای تقدیر دارد و رهبر دینی ماجرام مولانا دستور فرمودن از شما تشکر کنم یا مولوی سینمت فرمودن و مردم بگو که در ظاهر مولوی شابدین الدین قریب بود چون خافی نبود اما مردم طوری اصل عمل نشان دادن که هیچ کس گمان نکرد مولوی شاب الدین قریب است بنده هم عرض شما تاج سر ما بوده اید و پدر شما استاد فرزانه ما بوده و هیچ مردم اون فکر را نداشتید که من شاب از مذره شیخستان ها خافیست علایه ها باست هم عرض می کنم مصیبت وارده رو به همه شما تثمیت عرض می کنم استاد و بزرگوار امام جمعه محترم که حضور دارن سیاستمداران مداران و بزرگانی که حضور دارن به همه تثمیت عرض می کنم این نوید رو به همه شما می دهم ده که الحمدلله. از تو وقتی من تمام شد داری یک چیز رو یادم اولی که سال گذشته من برای دکتوری که قبول شده بودم گفتم خدمت ملناشیدی گفتم میخوام یک مقالی بنویسم در مورد یکی از شخصیت های بزرگ فرمودن از ملنه روحانی بنویس. ملنه روحانی یک کتاب عجیبی دارد به شعر 1600 خورده نام شیر در عربی رو همه را در رسای استاد خود همه را به شعر دار این رو بردم برای یکی از اساسی خود در دانشگاه استاد من این رو که دید گفت این استاد، استاد شما یک دایرت المعارف زنده بوده که توانسته این رو این گونه به نظر در آورد امروز میگویم بلنامو شهیدی در دست دایرت المعارف های بزرگ اسلامی یک دایرت المعارف بزرگ دینی فقهی حدیثی بود و مطمئن باشید که برای شما جای رسول محارفای بزرگی دیگری را آماده کرده و همه در خدمت شما خواهند بود از همه شما ممنونیم دست همه شما رو میبوسیم که این صدر به دین و دیانت و علماء خود احترام گذاشتید و هم خدمت حضرت مولانا با کمال قدرت و شامد ارز میپنیم که تا جای که نفسی برای طالب ضعیف و ذه هم باشد نخواهد گذاشت کمترین احساس کمی به شما رخ داد ما الى و ما علینا الیل و السلام علیکم